چندان بخورم شراب کین بوی شراب آید ز تراب چون ربم زیر تراب تا بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب در راه نیاز هر دلی را دریاب در کوی حضور مقبلی را دریاب سد کعبه آب و گل به یک دل نرسد کعبه چه بر دلی را دریاب روزی که به دست بر جام شراب و از قاویت خورمی شوم مست و خراب، صد معجزه پیدا کنم در هر با، این طبع چو آتش و سخندهای چو روزی که دو محلت است می خورمه ناب، کین عمر گذشته در نیابی دریا دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز به می باش خراب.